زمائم فصل سوم استحکام امپراتوری چنگیز برای تحقق بخشیدن به دوام امپراتوریش پس از مرگ خود در صدد ایجاد هماهنگی در میان پسرانش برامد و آنان را متقاعد کرد که باید به خاطر خیر خود با هم همکاری کنند اتا ملک جوهینی در جلد اول تاریخ جهانگشا این صحنه را که چنگیز فرزندان خود را گرد می و قدرت وحدت تحت فرمانی خان را تشریح می کند شهر داده است روزی پسران را جمع کرد و یک تیر از کیش برکشید و آن را بشکست دو عدد گردانید و آن را هم بشکست یک یک تیر بر می تا چند عدد شد از کسران زور از مایان آجز ماندند روی به پسران آورد و گفت مسئله شماست تیر ضعیف چون به یاران مزاعف شود و هم پشت باشند مبارزان بر شکستن آن قادر نباشند و به عجز دست از آن باز دارند مادام که میان شما برادران مظاهرت ظاهر باشد و مساعدت هر یک به مساعدت دیگران قوی هرچند اصحاب شدت و شوکت باشند زفر نتوانند یافت و اگر از میان شما یک کس سرور نباشد که دیگر اخوان و اولاد و اعوان و اعزاد متابع رأی و متابع فرمان او باشند مثل مار چند سر باشد که شبیه سرمایه سخت افتاد خواستن تا در سوراخ خزند و دفع سرما کنند هر سر که در سوراخ میکرد سر دیگر منازعت می تا بدان سبب حلاک گشتند و آنک مار یک سر بود و دنبال بسیار در سوراخ رفت و دنبال و تمامت اعضا و عاعضا را جای داد و صعلت برودت خلاصی یافتند. وفاداری برتش شرح جوانی پلان و کارپینی راهب درباره وفاداری مغان در کتاب معموریتی به آسیا که مجموعه ای از گزارش های سفر به تدوین کریستوفر داوسون است نق شده است. انگامی که آنها به جنگ می روند، اگر یک نفر یا دو نفر یا سه نفر یا حتی تعداد بیشتری از یک گروه ده نفره فرار کنند، همه را به غتر می رسانند. و اگر تمامی اعضای یک گروه ده نفره فرار کنند، بقیه یک گروه صد نفره را نیز به غتر می رسانند. خلاصه اینکه که بجز مواقع اغب دست جمعی، همه افرادی را که از میدان جنگ رو بگردانند، به غتر می رسانند. به همین ترتیب اگر یک نفر یا دو نفر یا تعداد بیشتری شجاعانه پیش بروند و به جنگند آنگاه بقیه گروه ده نفره را اگر از آنها پیروی نکنند به قتل می‌رسانند و اگر یک نفر یا تعداد بیشتری از گروه ده نفره اسیر شوند هم قطارانشان را اگر آنها نجات ندهند به قتل می‌رسانند مدارای مذهبی چنگیزخان اتا ملک جوینی مورخ ایرانی در کتاب تاریخ جهانگشا به احترام گذاشتن چنگیز به همه ادیان اشاره کرده است. با وجود این او مانند بسیاری از معاصران خود نتوانسته است درک کند که چنگیز خان معتقد به شمنیس بوده است و این عقیده اشتباه را پیدا کرده است که مقلان اصلا دینی نداشتند. چنگیز خان چون مقلد هیچ دین و تابع هیچ ملت نبود از تأصب و رجحان ملتی بر ملتی و تفضیل بعضی بر بعضی مشتن بوده است بلک علما و زهاد هر تایفه را اکرام و اعزاز و تبجیل می است و در حضرت حق تعالی آن را وسیلتی می و چنانک مسلمانان را به نظر توغیر می نگریسته ترسایان و بطپرستان را نیز عزیز می داشته و اولاد و احفاد او هر چند کس بر موجب هوا از مذاهب مذهبی اختیار کردند بعضی تقلید اسلام کرده و بعضی ملت نصارا گرفته و طایفه ای عبادت اسنام گزیده و قومی همان قاعده قدیم اوبا و اجداد او را ملتزم گشته و به هیچ طرف مایل نشده اما این نو چمتر مانده است و با تقلید مذاهب بیشتر از اظهار تعصب دور باشند و از آن یاسای چنگسخانه است که همه توایف را یکی شناسند و بر یکدیگر فرق ننهند عدول نجویند. ایجاد ترس در دیگران. اهل گنجک مورخ ارمنی که به دست مغولان اسیر شد و به عنوان منشی وادار به خدمت به آنها گردید در مورد ظاهر جولیده و آدات غذا خوردن مغلان به اظهار نظر پرداخته که در کتاب چنگیز خان اثر مایکل هوانگ به چاپ رسیده است آنها زشت و ترسناک به نظر می رسیدند. ریش نداشتند هرچند روی گونه ها یا بالای لب های بعضی هایشان موهای اندکی رویده بود چشمانشان تنگ و کشیده بود و صدایشان تیز و کرکننده زندگی آنها خیلی سخت بود آنها افراد بیباکی بودند انگامی که فرصت داشتند دائما می و حریسانه می نوشیدند اگر چون فرصتی نداشتند در خوردن و نوشیدن امساک می کردند همه موجودات زنده را چه تمیز چه کسیف می و آنچرا که بیش از همه دوست داشتند گوشت اسب بود تکه های کلوفتی از گوشت اسب را یکی پس از دیگری می و می جوشندند یا بدون نمک کباب می کردند. بعضی از آنان مانند شطاران به صورت دو زانو و بقیه به صورت چار زانو می و غذا می خوردند. و اگر کسی چیزی را برای خوردن یا نوشیدن برایشان می آورد، ابتدا قسمتی از آن را به آن شخص می و او را مجبور به خوردن یا نوشیدن بخشی از آن می کردند. به طوری که به نظر می رسید می زهری کشنده به خوردشان بدهند.